تَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّا هُمْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ از مردم می چه چیز آنها را از قبلشان که بر آن بودند بازگردانید بگو مشرق و مغرب از آن خداست برکت را بخواهد به راه راست هدایت می میکند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 کسی را که از پیام بر پیروی می نماید از کسی که بر پاشنهای خود به عقب باز می‌گردد، و اگرچه این حکم جز بر کسانی که خداوند آنها را هدایت کرده دشوار است و خداوند هرگز ایمان شما را ضایع نمیگرداند همانا خداوند نسبت به مردم رعوف مهربان است قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الذین اوتو الكتاب لیعلمون انه الحق من ربهم و من الله بغافلین عن ما یعملون به تحقیق ما روی تراب سوی آسمان تو اکنون تراب سوی قبل ای که به آن خوشنود شوی باز میگردانیم. پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن و هرجا جا باشید روی خود را به سوی آن بگردانید و کسانی که کتاب آسمانی به انها داده شد به خوبی میدانند این تغییر قبل حق است و از جانب پروردگارشان گارشان می باشد و خدا از آن چه قافل نیست و لئن اتیت الذین اوتو الكتاب بکل وما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولا ان اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا من و اگر برای آنان که کتاب به دیشان داده شده هر گونه نشانه و حجتی بیاوری از قبلی تو پیروی نمی و, و تو نیز از قبله آنان پیروی نخواهی کرد و برخی از آنان هم از قبله برخی دیگر پیروی نمی کنند و اگر بعد از آن که علم و دانش به تو رسیده است از خواسته و آرزوهای آنان پیروی کنی در این صورت مسلما از ستم خواهی بود الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون کسانی که به آنان کتاب آسمانی داده ایم او را میشناسند چون که فرزندان خود را میشناسند بهمانا گروهی از آنان در حالی که میدانند حق را کتمان می کنند الحق من ربک فلا تکونن من الممترین حق از جانب پروردگار تو است پس هرگز از شک کنندگان مباش و لیکلین وجهتون هو مولیها فاستبقوا الخیرات اینما تكونوا یأتی بكم الله جمیعا ان الله على كل شيء قدیر و برای هر یک جهتی است که هنگام نماز بدان رو میکند پس در ها بر یک دیگر صفقت بگیرید هر جا که باشید خداوند همه شما را حاضر می کند. همانا خداوند بر هر چیزی و من حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام و اینه للحق من ربك و من الله بغافل عما ما تعملون و از هر جا بیرون شدی پس به هنگام نماز روی خود را به مسجد الحرام کن و بدرستی که این رو حقی از جانب پروردگارت است و خداوند از آنچه میکنید قافل نیست و من حیث خرجت فولی وجهت شطر المسجد الحرام وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا عُجُومَكُمْ شَطَرَهُ لِأَنْ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي, فلا تخشوهم وخشوني وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون جونان كيباياماري از خودتان در میان شما فرستادیم که آیات ما را بر شما می و شما را پاک می گرداند و به شما کتاب و حکمت می آموزد و آنچه نمی به شما یاد می دهد فذکرونی اذکرکم و ولا پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و سپاس من را و ناصفاسی من نکنید یا ایها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ای کسانی که ایمان آورده اید از شکیبایی ای و نماز یاری بجویید همانها خداوند با شکیبایان است ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون به انهم در راه خدا کشته میشوند مرد نگیوید بلکه آنان زنده اند ولی شما نمیفهمید ولا نبرؤنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفوت والثمرات وبشر الصابرين فقط ان را با چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش مال ها و جانها و میده ها آزمایش میکنیم و مژده بده به صابر کنندگان الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا قالوا ان لله و ان ما اليه راجعون آنها که هرگاه مصیبتی به ایشان برسد میگویند ما از آن خداییم و به سوی او باز می‌گردیم اولائك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولائك هم المهتدون اینها هستند که درودها و رحمتی از پروردگارشان بر ایشان است و اینانند هدایت یافتگان إن <تقنی> الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم حمانا صفا ومربه از شعائر خداست پس هر که حج خوانی خدا کند و یا عمر انجام دهد بر او گناهی نیست که میان آن دو تباف کند و کسی که به رقبت نیکی را انجام دهد پس به درستی که خداوند سپازگذار داناست. ان الذين يختمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك يلعنه الله ويلعنوهم لاعون هماناکسانی که آنچرا که از دلائل روشن و هدایت نازل کرد این بعد از آنکه آن را در کتاب تورات برای مردم بیان نمودیم کتمان کنند، خدا آنها را لعنت می کند و لعنت کنندگان آنها را لعنت میکنند الا تابوا فاولئک عليهم التواب مگر کسانی که کردند و امال خود را اصلاح نبودند و را کتمان کرده بودند آشکار ساختند پس اینانند ایشان را میپذیرم و من تابه پذیر مهربانم این الذین كفروا و وهم و هم کفار اولائی علیهم الله و والناس اجمعین همانا کسانی که کافر شدند و در حالی که کافر بودند مردند لعنت خدا و فرشتگان به همه مردم بر آنها خواهد بود طالبین فیه لا يخفف عنهم العذاب ولا هم در آن لعنت جاودانه باقی میمانند و نه عذاب آنان تخفیف داده میشود و نه ایشان مهلت داده میشوند. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد لا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ و خدای شما خداوند یگانه است که غیر از او معبودی نیست بخشنده مهربان است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 فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون همانا انا در افرين ش اسمانها و زمين و امد شل ش وروز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 و لو یرالذین ظلمون اذ یرون العذاب أن القوة لله جمیعا و ان الله شدید العذاب و از مردم کسانی هستند غیر از خداوند همتایانی را انتخاب می کنند و آنها را مانند دوست داشتن خدا دوست میدارند و کسانی که ایمان آورده اند خدا را بیشتر دوست میدارند کسانی که ستم کردند اگر میدیدند هنگامی که عذاب را مشاهده میکنند که تمام قدرت از آن خداست به این که خداوند سخت کشفر است از تبر الَّذِينَ تُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ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 و ما هم بخارجین من النار. و در این هنگام پیرمان میگویند کاش برای ما بازگشتی به دنیا بود تا از آنها بیزاری جوییم همانگونی که آنان از ما بیزاری جستند این چون این خداوند کردارهایشان را به صورت حسرتزائی به آنان نشان میدهد. و هرگز از آتش دوزخ بیرون نخواهند آمد يا أیها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبین ای مردم از آنچه در زمین است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 و این که به خداوند نسبت دهید آنچه را که نمیدانید وإذا و اذا قیل لهم اتبعو ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا عليه آباءنا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 باز هم کورکورانه از آنها پیروی میکنند و مثل الذين كفروا مثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء او نداء صم بكم عمی فهم لا يعقلون مثل کسانی که کافر شدند همچون مسئله مثل کسی است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 یا ایوها الذین آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناكم واشكروا لله و لله کنتم ایاه تعبدون ای کسانی که ایمان آورده اید از چیزهای پاکیزه ای که روزی شما کرده این بخورید و شکر خدا را بجا آورید اجر تنها او را می پرستید اینما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما إلا به لغير الله فمن يطغ و غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه إن الله غفور رحيم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 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا طليلا أولئك اولئی ما یأکلون فی بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القیامة ولا يذكیهم ولهم عذاب علیم براستی کسانی که کتبان میکنند آنچرا خدا از کتاب آسمانی نازل کرده و آن را به بهای اندکی میفروشند آنها جز آتش چیزی نمی خوردند و خداوند روز قیامت با آنها سخن نمیگوید و آنان را پاکیزه نمی کند برای آنها عذاب دردناکیست است الذین الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبين وآتى المال على حبه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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فَمَنْ فِي لَهُ مِنْ اَخِیهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَهُ فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ ای کسانی که ایمان آبرده در مورد کشتگان،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 وقالكم فی القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون خرد برای شما در قصاص حیات و زندگی است باشد که شما تقوا پیشه کنید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 این حقیست و پرهیزگاران فمن بدله بعدما ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه ان الله سَمِيعٌ عليم پس هر کس که بعد از شنیدنش آن را تغییر دهد به درستی که گناهش بر است که آن بسیت را تغییر میدهند همانا خداوند شنوای داناست فمن خاف من موص جنفا او اثم فاصلح بینهم فلا اسم علی ان الله غفور رحیم. پس کسی که از وسیت کننده یا از گناه او بترسد آنگاه میان آنها را اصلاح نمود پس گناهی بر او نیست به درستی که خداوند آمرزنده مهربان است یا أيها الذین آمنوا كتب عليكم الصیام كما كتب علا الذین من قبلكم لعلكم تتقون ای کسانی که ایمان آورده اید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 بِلاَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى والفرقان فمن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آن چند روز محدود و اندک ماه رمضان است ماهی که قران در نازل شده است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 اجیب دعوت از اذا ایزا دعان فلیستجیبونی و اليومنو بی لعلهم یرشدون و چون بندگانم از تو درباری من بپرسند بگو راستی که من نزدیکم دعای دعا کننده راه که مرا به خانت اجابت میکنم پس آنان باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند باشد که راه یابند احل لکم لیلتا الصیام رفت الى نسائكم هن لباس لکم و انتم لباس لهن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 و نزدیکی با همسرانتان در شب و روز بر شما حلال گردیده است آنان لباس شما هستند و شما لباس آنها خدابند میدانست که شما به خودتان خیانت میکردید، پس توبه شما را پذیرفت و شما را بخشید پس اکنون در شبهای رمزان می توانید با آنان آمیزش کنید و آنچرا خدا برای شما مقرر داشته طلب کنید و بخورید و بیاشامید تا رشته سپید صبح از رشته سیاه شب برای شما آشکار شود. سپس روزه را تا شب به پایان رسانید، و در حالی که در مساجد متکف هستید بازنان آمیزش نکنید. این مرد های الهی است پس به آن نزدیک نشوید، خداوند این چین آیات خود را برای مردم روشن میسازد باشد. که به ریگار و لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون با را در بين خود به باطل نخورید و به عنوان رشوه قسمتی از آن را به حاکمان و قضات ندهید تا بخشی از انوال مردم را به گناه بخورید در حالی که شما میدانید این کار گناه هست یسئلونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج وليس البر ان تات بيوت من ظهورها ولكن البر من استقا واتل بيوت من ابوابها واتق الله لعلكم تفلحون درباريه هلال های ماه است سوال میکنند بگو آنها بیان اوقات برای مردم تا این وقت حج و نیکوکاری آن نیست که در حال احرام از پشت خانه‌ها وارد شوید بلکه نیکوکار کسی است که تقوا پیش کند و به خانه‌ها از درهایشان وارد شوید و از خدا بترسید تا رستگار شوید وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا لا <تصفيق> و در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند جنگ کنید و از حد تجاوز نکنید که خداوند تجاوزگران را دوست نمی دارد و قتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجهم من حیث اخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين كجا <تصفيق>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 پس اگر دست برداشتند بیگمان خدابند آموزنده مهربان است وقاتلوهم قاتلوهم حتی لا تکون فتنت و یکونت دین لله فا انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین و با آنها جنگ کنید تا فتنه باقی نماند و دین از آن خدا گردد پس اگر دست برداشتند تجاوز جز برش کاران روانی است الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين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 ان الله يحب المحسنين. و در راه خدا انفاق کنید و خود را با دست خیش به هلاکت نیافتنید و نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد و اتم الحج والعمرة لله فان افطرتم فما من الهدی ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك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 و یا ناراحتی در سر داشت پس فدیه دهد از قبیل سه روز روزه یا صدقه خوراک دادن به شش مسکین یا قربانی کردن گوسفندی که میان فقرا تقسیم شود. پس هنگامی که در امان بودید هر کس از عمر بحرمند گردد سپس اعمال حج را آغاز کند آنچه از قربانی برای او سر شد زب می کند و هر کس نیافت سه روز در ایام حج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 فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَنَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَدَوَّجُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَادِ اتَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ <تصفيق> در ماه های معلوم و معینی است پس کسی که در این ماهها حج را برخود فرض گرداند باید بداند که در حج آمیزش جنسی و گناه و جدال روانی است و آنچه از کارهای نیک انجام دهید خدا آن را میداند. و توش برگیرید که بهترین توش پرهیزگاری است به ای خردمندان أز من بپریزی. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُ فَضْلًا مِن رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِن عَرَفَاتِ فَذْكُرُ اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامَ وَذْكُرُوهُ كَمَا هداكم وإن كُنْتُمْ مِن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 و اگر چه پیش از آن از گمراهان بودید ثم افض من حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور پس از آنجا که مردم کوچ می کنند کوچ کنید و از خداوند آمرزش بخواهید همانها خداوند أمرذنديه مهربان است فإذى قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق هست چون مناسک حج خود را به جای آبرید خدا را یاد کنید همانند یاد کردن پدرانتان بلکه بیشتر از آن و از آنان کسانی هستند که میگویند گویند را به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت میز نیکی عطا فرما و ما را از عذاب آتش نگهدار. من یقول ربنا آتینا في الدنيا حسنتا و في الاخرات حسنتا و قمع و از آنان کسانی هستند که میگویند گویند پروردگارا به ما در دنیا نیکی اتا کن و در آخرت نیز نیکی اتا فرما و ما را از عذاب آتش نگهدار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 فمن تعجل فِي یومین فلا اثم علیه ومن تأخرا فلا اثم علیه لمن اتقا واتقوا الله أنكم إليه تحشرون. و الله و اعلمو انکم خدا را در روزهای معین و شمارده یاد کنید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 و من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام و از مردم کسی هست که گفت آرش درباره زندگی دنیا تو را به شگفت میاندازد و خدا را بر آنچه در دل خود دارد گواهی میگیرد. و حال آنکه او سرسخت ترین دشمنان است و اذا تولى تعاف الأرض ليفسد فيها و يهلك الحرث والله لا يحب الفساد او هنگامی که روی برمیگرداند و میرود در راه فساد در زمین کوشش میکند و کشت و نسل را نابود میسازد.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 ومن الناس من یشری نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد و از مردمان كسی هست که جان خود را برای بدست آوردن خشنودی خدا می فروشد و خداوند نسبت به بندگان مهربان است یا أیها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم كاففتاا ولا تتبعوا خطوات الشیطان نه لكم عدو مبین ای کسانیکه ایمان آوردهاید همگی به اسلام درایید و های شیطان را پیروی نکنید به درستی که او برای شما دشمن آشکار است فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا فَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَكِيمٌ پس اگر بعد از آن که نشانهای روشن و آشکار برای شما آمد لغزش کردید بدانید که خداوند توانمند و حکیم است هل ینظرون الا ان یعطیهم الله في غلل من الغمام والملائکة و قضی الامر و الله ترجع الامور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 از كَمْ لکم آتیناهم من آیت بینه و من یبدیل الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب از بنی اسرائیل بپرس نشانه های روشن به آشکار به انها داده و کسی که نعمت خدا را پس از آن که برایش آمد دگرگون کند، همانا خداوند سخت کیفر است. زین للذین كفروا الحیاة الدنیا و من الذین آمنوا، والذین اتقوا فوقهم يوم القیامه، والله یرزق من يشاء بغیر حساب،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 كانت أمم واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.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 وَمَنْ يَرْتَدِبْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأولئك, فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 الذين امنوا يرجون الله, الله والله درستی کسانی که ایمان آوردند و کسانی که هجرت کردند و در راه خدا جهاد نمودند آنان به رحمت خدا امیدوارند و خداوند آمر زندگی است. يسألونك عن الخمر والمنفوق قل فيهما اسم كبير ومنافع نفع للناس و أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو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 این چون این خداوند آیات را برای شما روشن می‌سازد، سازد باشد که اندیشه کنید بی الدنیا والآخرة و يسألونك عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر و انتو خالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من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 ولا تُكِحُ المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه و یبین آياته الناس لعلهم يتذكرون. و فباذنان مشک تا ایمان نیاوردند ازدواج نکنید و بیگمان کنیز با ایمان از زن آزاد مشک بهتر است اگرچه زیبایی یادارای او شما را به شگفت آورد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 و آیات خود را برای مردم روشن میسازد باشد که متذکر شوند و عن المحیر قل هو ادن فاعتزل النساء في المحیر ولا لا تقربوهن حتی يطهر فإذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ من حَيْثُ عَمَرَكُمُ الله اِنَّ الله يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ و از تو در حیز میپرسند بگو آن پلید و زیانبار است پس در حالت قاعدگی از زنان کنار گیری کنید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 نساؤکم حرف لکم فأتو حرفكم انا شئتم و لأنفسكم و الله و أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين زنان شما شما هستند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 لا یعاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولكن یعاخذکم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلیم خداوند شما را به خاطر سوگند هایی که بیهوده و بدون قصد یاد میکنید کنید مؤاخذه نمی ولی شما را به آنچه دلهایتان کسب کرده است مواخذه میکند و خداوند آمرزنده و بردبار است لِلَّذِينَ يَأْكُلُونَ من نِّسَائِهِمْ برای کسانی که سوگند می‌خورند با زنان خود آمیزش نکنند چهار ماه انتظار است پس اگر بازگشتند همانا خداوند آمرزنده مهربان است و ان الطلاق الله علیم. و اگر تصمیم طلاق گرفتند به راستی که خداوند شنوای و است وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِذِ وابو عولتهم ما حق بردهم في ذلك ان اراد اصلاحا ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجه والله عزيز حكيم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 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْفَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ طلاق دوباره است پس آن یا باید همسر را به طور شایست نگاه داشتن یا بانی کی راها کردن و برای شما روانی است که از آن چه به آنان داده اید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 پس ينانند کسی ستم گرند طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا این ظنا أن یقیما حدود الله وتلك حدود الله یبینها لقوم یعلمون پس اگر شوهر برای بار سوم او را تلاق داد پس از آن زن برای او حلال نیست تا اینکه با شوهری غیر از او ازدواج کند. و با او آمیزش جنسی نماید، پس اگر شوهر بعدی او را طلاق داد، گناهی نیست که با ازدواج مجدد به یکدیگر بازگردند باز گردند. اگر آن دو پندارند که حدود خدا را برپا دارند، اینها حدود خداست که آنها را برای مردمی که می‌دانند، بیان می نماید.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 وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. پهنگامی که زنان را طلاق دادید آنگاه به پایان روزهای عده خیش رسیدند پس به شایستگی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 ایدا ترازو بينهم بالمعروف، ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله واليوم الآخر، ذالکم أذکلکم و أطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. و هنگامی که زن را طلاق دادید.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 وَإِن این أَن ان تسترضعو اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف و الله و اعلموا الله بما تعملون بصیر باید خود را دو سال تمام شیر دهند.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 مانند همین احکام بر وارث نیز لازم است پس اگر آن دوبار زایت و مشورت یک دیگر بخواهند کودک را زودتر از باز گیرند گناهی بر آنها نیست و اگر خواستید که برای فرزندان خود دایه ای بگیرید گناهی بر شما نیست به شرط اینکه که آنچرا که مقرر کرده اید به طور شایسته بپردازید و از خدا بترفید و بدانید که خدا به آنچه انجام میدهید بیناست و الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُتِهِنَّ أَرْبَعَتَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ مثلجنا حليفم في م ف نف فوسهّ والله بما تعملونخوام و کسانی از شما که میمیرند و همسرانی باغی میگذارند باید چهار ماه و ده روز انتظار بکشند پس هنگامی که مدت عدده خود را به پایان رساندند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 علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقبة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حلیم. و گناهی بر شما نیست. در آنچه که به طور کنایه از خاصگاری زنانی که در ادیان بر زبان آورید یا در دل‌های خود پنهان دارید.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 وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُمَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُوهُمَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقَرَبُ لِلتَّقْوَى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 و تمام مهر را بدهد و اگر ببخشید به پرهیزگاری نزدیکتر است و بزرگواری و نیکی را در میان خود فراموش نکنید به راستی خداوند به آنچه می‌کنید بیناست حافظو علی الصلوات و الصلاة الودقا لله طانفین بر نمازها و بخصوص نماز میانه محافظت کنید و فروتنانه برای خدا بپاخیزید فا این خفتم فرجالا او رکبانا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 همان گونه که چیزهایی را که نمی‌دانستید به شما یاد داد. والذین یتوفون منکم و وصیة لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج فان خرجنا فلا جناح علیکم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 از قبیل زینت دادن خود و ازدواج مجدد گناهی بر شما نیست و خداوند توانمند و حکیم است. و برای زنان طلاق داده شده ای مناسب و شایسته بر شوهر لازم است. این حقیست بر پرهیزگاران. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم این چون این خداوند آیات خود را برای شما روشن میسازد باشد كه بیندیشید ألم تر إلى الذین خرجوا من دیارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا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 ولی بیشتر مردم شکر به جانمی آورند و قاتلو فی سبیل الله و اعلمو ان الله سمیع علیم و در راه خدا بجنگید و بدانید که خداوند شنوای داناست من ذا الذی الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره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 إثراءاً من بعد مساز قالوا لنبيل إذ قالوا لنبيل لهم, لنبي لهم بعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله قال هل عسىتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلون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 پس هنگامی که جنگ بر آنان مقرر شد، جز عدی کمی از آنان همه سرپیچی و رویگردانی کردند و خداوند به ستمکاران آگاه است. لهم ان الله قد بعث لكم طالوت قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصطَّفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَثَّةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاء والله واسع علیم با پیامبرشان به آنها گفت همانا خداوند تالوت را به عنوان پادشاه برای شما بابووس و انتخاب کرده است گفتند چگونه او بر ما پادشاهی کند با اینکه ما به پادشاهی ازوس ترین و از مال دنیا بهره چندانی داده نشده است گفت به راستی خداوند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 فَلَمَّا فَطَلَ طَالُوتُ بِالجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ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 قالوا ربنا افلغ علینا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین و, الكافرين. و هنگامی که برای مبارزه با جالود و سپاهیانش به میدان آمدند گفتند پروردگارا بر دلهای ما صبر و شكیبایی فروریز های ما را استوار و ثابت بدار و ما را بر گروه کافران پیروز بگردان. فهدموهم بإذن اذن الله و قتل داوود جالوت و آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء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 و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیله برخی خی دیگر دهف قطع ان قطعاً زمین تباه گردید ولی خداوند بر جهانیان فضل و بخشش دارد دل آیات الله نتلوها علیک بالحق و لمن المرسلین اینها آیات خداست که ما آن را به حق بر تو میخوانیم. و به تو از پیامبران هستی